خب بسم الله الرحمن الرحیم دیه مغلظه و مخففه رو خوندیم گفتیم قتل امد و شبه عمد دیهشون مغلزه هست و توضیح دادیم دیه مغلزه چقدر هست و در بحث قبلی رد شد دیه خطا رو خوندیم که مخففه هست ولی دیه خطا هم در جا مغلظه میشه وتغلظ دية الخاطئ في ثلاثة مواضع ومغلظة مش دية خطا دية قتل خطا در سجى يك إذا قتل في الحرم زمانك در حرم بكوشة مثلا حرم مكي أو قتل في الأشهر الحرم يا در ما هاي حرام ذو الحجي ذو القعدي محرم رجب در ما هاي حرام كتار طعسان اگر كشت بازهم خطا يخطا مغلذمش أو قتل ذا رحم محرم یا زمانی که غریب ای رو که محرمش هست بکشد هم قریبه و هم محرم مانند مادر مانند خواهر اما دخترمون نه چون دخترمون محرم نیست باش بله. پس زمانی که کشت غریبه قریبه محرمی رو خب، ودیت المرأة على النصف من دیة الرجلی دیة الزن بر نصف دیة مرد است. بله، تبقی مناسبه. امام شافعی رحمتالله عليه دیة الزن نصف دیة مرد است. یعنی پنجاه شتر، چون دیة مرد بود شطور شتر. ودیة اليهودی و النصرانی ثلث دیة المسلمی. والدية يهودي ومسيحي نصري يكسفومة دية مسلمانست يعني سيوس شطر يكسفومة شطر <تصفيق> <تصفيق> واما المجوسي واما دية مجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم دية عش دو عشر دو یک دهومه دیه هست دو سفومه عشر است. دو سوم عشر دیه مسلمان هست که میشه شیش شطور رو یک سفومه شطور 6 شطور کامل و یک سفومه شطور وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب الأقل والذكر والأنثيين و کامل میشه دیه نفس در قطع دو دست باله اگر دو دست قطع... کسی رو قطع کرد دیه کامل بپردازد پس و کامل میشه دیه نفس در چه چی چیزی و تکمل و نفس یعنی دیه کامل پر... پرداخته بشه فی قطع الیدین در قطع کردن دو دست اگر یک دست بود نصف دیه کامل که میشه پنجاش اما اگر هر دو دست کسی رو قط کرده بود دیهش میشه دیه کامل صد شدار. پس کامل میشه دیه نفس یا دیه یک شخص کامل را بدهد در قط کردن دو دست یا دو پا بینی دو تا گوش دو تا چشم پلک های چهارگانه دو تا چشم القه چار زبان دو تا لب رفتن سخن رفتن بینایی رفتن شنوایی رفتن بویایی رفتن عقل اینها هم دییشون نفس کامل هست سبب بشه که اینا از بین برند و الذکر ذکر شخص و الانثیین و دو تا اشوفي و والسن خمس من الابل در جرح که قبلا توزیش دادیم شکستگی در سر بود که استخان دیده میشد در صورت همچنین بله اگر جرح موضح بود پنج شطر اگر یک دندان هم مال کسی رو انداخت پنج شطر و في كل عضو لا منفعت فيه حکومه و در هر عضوی که در آن منفعتی نباشد اونجا است که توضیحش میدید پس اگر عضوی رو قطع کرد که درش منفعت نبود خاطر جمال بود ماننده دست فلچ پای فلچ اینجا چکار میکنه؟ حکومتون خب در در اون عدلهی که اون که برای ذکر کرده کتاب متن ابی شجا ایشون اینجوری گفته گفته مقدار مقداری از دیه که قاضی عادل متناسب با اون جنایت اونو تشخیص میده ولی سه چار شرح دیگر من این کتابو که من نگاه کردم اینجوری توضیح داده بودند که این عضوی که از کار افتاده اگر شخصی اومد اونو قطع کرد چکار میکنه میاد اون شخصی که عضو اون فلجش اون عضوی که خاطر جمال هست نفعی درش نیست کارایی ندارد اون عضو میگه میاد اون مجنی علهو به این تقدیر که برده هست قیمت میگذارد اگر قیمتش بدون جنایتی که بر اون دستش مثلا انجام داده بود ده درهم بود آ و و بدون اون عصف قیمتش نه درهم بود اینجا نقصی که پیش اومده یک درهم است که همون یک ده هم است اینجا باید یک ده همه نفس رو شخص شکار کند <تصفيق> پرداخت کند یک ده دیه نفس رو که دحتو شطور است فرزند باید پرداخت بکنه بله این حکومت هست به این شکل درش میارن بسیاری از کتب اینجوری شرحش داده بودند پس میاند اون شخصو به این تقدیر که برده هست قیمت گذاری میکنن بعدا ببینن قیمتش با اون دست مثلا اون دست بدون منفعتی که دارد چقدر هست؟ فرزن صد درهم است یا فرزن ده درهم است بدون اون دست و بدون اون دست که قیمتشو میان میبینند نو درهم است یا در درهم است میبینند که اینجا یک دهم نقص وجود داره فرق دو قیمته ها؟ پس یک دهم شروع پس یک دهم دیه نفس اینجا چی میشه لازم مشي ده همون 10 بود و العبدي دیمه خوب اگر اون عبد بود میگه دیش قیمتشه چقدر بود دیهشون است و الجنين الحر غره عبد او امتن و والديه جنين آزاده اخصه جنینی رو گوش. دیه این جنین چقدر هست؟ قیمت قیمته یک ورده یا یک کنیس. بله و ديه الجنين الحري غررتون عبدون أو أمتون إن جنوشت عبدين أو أمتين ميقيت ديه جنين آزادين يه غرره هست عبد يا كنيس عبد يا كنيس تقریبا که قیمت هر یکی از اینا مصاوی با یک دهم دیه مادر باشد یک دهم دیه مادر باشد خب دیه مادر که پنجاه شطور باشد بر این اساس واجب در جنین دیه جنین مسلمان برده ای که قیمتش پنشتر باش یا بدل آنمون پنشتر بله و دیه تول الرقیق عشر قیمت امه اما دیه جنین برده یک دهم ده قیمت مادرش هست مادرش چقدر قیمت داشت یک دهم ده قیمت مادرش قیمت اون دیه جنینش هست بله یکی بر مادر جنایتی انجام داده خب جنین مرده به دنیا اومد خلاص این شو بده دیش چقدره همینی که گفتیم باله. دیه جنین آزاده یه قرره هست برده یا امت که قیمتش به قیمت 5 شتر باشه فصلون القسامت تو فصل بعدی در رابطه با قسامه هست من سجنت خردين درخند وإذا اقترنا بدعوة دمي لوث يقع به في النفس صدق المدعي حلف المدعي خمسينا يمينا واستحق ديتة ميجزمالك هم راهبود بإدعاء قتل بإدعاء خون لوث قارينهم راهبود شخصی که ادعا می کرد اون قتل رو قرینه هم همراهش بود حالا قرینه چه حالیه بود چه مقالیه قرینه حالیه مانند این که شخص شخص کشته شده در روستایی یافت شود یا در محله یافت شود که بین اون روستا و بین اهل اون مقتول دشمنی باشد و در اون روزا جز اون دشمنان کسی دیگر زندگی نکنند این قرینه است برای این اینا اینو کشتند بحره. یا قرینه مقالیه باشد یک عادل مثلا برای چون ما برای گواهی دادن دو نفر نیاز داریم. یکی نفری وجود داشته باشد و گواه هم بده این آقا هم ادعا بکند و یک گواهی هم داشته باشد خب میگه زمانی که همراه بود به ادعای قتل یا بداء خون خول قرینه که واقع بشه به وسیله اون قرینه در نفس صداقت مدعی اون قرینه قرینه ای باشد که صداقت مدعی رو کمک بکنه قرینه برای صدق مدعی باشه میگه اینجا چکار میکنه حلف المدعی 50 یمینا مدعی 50 تا سوگند میخوره مستحق الدیه و مستحق دیه میشه با این کار مستحق دیه میشه بله مقتولش در روستایی افتاده که بین اون اهل روسا و بین این مقتول دشمنی بوده و همدیگه دیگه طرف بودند و کسی دیگه با اونجا زندگی نمیکنه کنه این یک قرینه هست برای مدعیان صاحب این مختول که بیان ادعا بکنند میگه اینجا مدعی پنجه تا سوگند میخورد و خلاص مستحق دیه میشه با این کارش و این لم یکن لوث اما اگر اونجا ای نبود برای صادق بودن اون مدعی فقط ادعا میکرد قرینهی که کمکش بکند به نفعش نبود ولیمون علی المدعاه علی اینجا دیگه مدعاه علی میخوره. و علی قاتل النفس المحرمه کفاره و بر قاتل النفس حرام کفاره هست یعنی کسی که نفسی را که کشتنش حرام هست را کشت کفاره میاد برش کسی انسانی را بدونه انسانی را که کشتنش حرام هست را کشت چه عمدی باشه اون قتل چه شبه عمد باشه چه خطا فرقی نمیکنه باد باید کفاره بده کفاره چه هست؟ اتقرقبت مومنه یا یک برده مؤمنی را آزاد کنه سلیمت من ال ایوب که این برده مؤمن از عیبه های موزر سالم باشه بتونه کار بکنه کور نباشه مثلا فلج نباشه بتونه کار بکنه فایلم یه جد اگر برده مؤمن گیرش نیومد فصیام و شهره اینجا دیگه میاد دو ماه پی در پی روزه میگیره. بله در اون جمله قبلی که گفتیم بحث قسامه بود زمانی که مدعی اومد دعوای قتل کرد که مردمشو کشتند اگر همراه او قرینه قرینهی بود ای که صدق مدعی رو ثابت میکرد پنجاه سوگند میخورد و خب مستحق دیه میشد اما اگر قرینهی نمیبود گفته بود که سوگند بر مدعا عله میاد خب اگر مدعا عله اومد و پنجه تو سوگند خورد که آقا من نکشتم اینجا دیگه مدعی مستحق دیه نمیشه اینجا مدعی مستحق دیه نمیشه خوب الحمدلله در اینجا کار بحث کتاب جنایات تمام شد